اگر نماز شبها مثلا به هم میخوره مقدم کنه زودتر بخونه که اگر خوابش رفت از دستش نره این مدت میگذر انشالله راه میبته